زندگی ی مستر روز سر بستیه، و رپچخان بو سر دستیه، بو تاریخی ابسوردگی می که شونه حمر بردگی. مجلس شيعتين اون منتخب و اسپرسودیه كلها مسأه. از ما بدتر نی به مراتب سوسیاست چودا جونم مفوبند. بسای كون بو شمو مراقب قرخ با تو مسأه. خودو همین جنک ازون بالو خرد نشون ازن به بعد مسولیو. این چه فکر و مزو واسوره که تو تو اینج مجبور به اقراره. تلاش بیود ضعف تا ور شر به دینج سهر اقتداره. مرگ تدریجی فقط برغ فلو دو حرف بیسه مر توف کن توف از پشت سر تغییر میشوم از صدای نفس خود تعدید میشوم قبر باز مر صدا میزنه ازرئیل باز مر ندا میزنه نگو بیاس هم توم که نمیم ازش تو پیشم کم کمیام نکن اصلا مر با خود خیاس بریازتو ندارم نیاز وجودم سر و میرزه با پای تو سبرو میترسه با تو مرده ها هم میرخزه تو با خدا هم میرزمه Oh, Thank you. در گم شدم آدم پروده از دوست دادن های کلمات مشکوک زیرم در گیر آبیات مسکوک فکر من نبوده کلیات مسکوت میکسر عادت زمان دیده کل ابدی شده مکان مخربه زمان مثلم سال مزروف نشم تراموام تو مترکه اگر شی دوست چی غلادم فرق پوشون باست چی سبب مبتهای تری خزه ولدوره ترک فو از خط ساف سراغ بوده و نه فکرش کامل در تزود با فکر باعث اون پوشت پرده چیرو سمت آدم شدیه و, و غصاس تشکیل ترتیب ازاب تخلی به ترکی به افکار پیش برو اول با تفکر قبل جنگ اول با تذکر مو میشی داخل ازدهم متم اینجطور به اتهام همشی دور جنوی تظام به قولول ابرنمشه گرفته مشان اووم به وزی افکار حکومت اعلام به غزی تظاق دروغ مقابل اعتراست تفاوم شلوغ معامله اعتضاس زیستن در سطح برزخ زخم در حد دوزخ زخ باز هم حواسم جمع فکرم درست برکر اتکاب به اقلوم نخواست. The source go feet.